این روزها میدان ولیعصر خیلی شلوغ است. بله، پیاده رو را میبینی چقدر شلوغ است، مخصوصا نزدیک سینما. درست است. نزدیک سینما قدس خیلی شلوغ است. این روزها در ایران جشنواری فیلم فجر برگزار میشود جشنواری فیلم فجر؟ بله، این جشنواره بینال است. و هر سال در بهمن ماه برگزار می شود. پس آنها می خواهند فیلم های جشنواره را ببینند؟ بله. فیلم های ایرانی و خارجی بسیاری در این جشنواره شرکت می کنند. ما هم می توانیم به سینما برویم و یک فیلم جشنواره را ببینیم؟ نمیدانم. می توانیم بلیط بخریم یا نه؟ چون این روزها سینماها خیلی شلوغ است. من دوست دارم یک فیلم تاریخی ببینم. دوستم مجید دانشجوی تاعتر است. به او تلفن می کنم و از او می خواهم دو عدد بلیط برای ما بگیرد.